مواضع تقدیم الخبر وجوبا جایگاه هایی که خبر باید قبل از مبتدا بیاید باید قبل از سی بیاید مقدم شود اینجا هم چهار تا جا هستند امثله گروه اول رو دقیقت بفرمایید اینه کتاب و خبر مقدم هست کتاب و مبتدای مؤخر هست کاف مضافان اله هست خب چرا اینجا خبر ابتدا آمده چون میگیم عین از اون است که باید در ابتدا بیاید از اون است که باید در ابتدا بیاید متا امتحان کیف الخلاص متا کیف کیفه به همین متا خبر مقدم الامتحان و مبتدا ماخر کیفه خبر مقدم الخلاص و مبتدای ماخر دقتي در امثلی گروه دوم بفرمایید انما شاعر البحتوریو انما مشاعر زمانی که خبر مقصور بر مقصور بر مبتدا باشد همانا طائر فقط کی هست؟ آه؟ مختوری, مختوری هست سابق فقط کی هست؟ محمد خطیب فقط کی هست؟ علی نیست خطیبی جز علی خب اینجا خبر و مقصور یا محسور بر کی گردانیده است بر مبتدا پس در این جایگاه هم موقعی ما دقت بفرمایید شما مثلا نفری دنجان نشستید. اگر من بخوام طالب بودن رو که خبر هست فقط مقصور بر آقای سهل بگردانم این انما ای طالبو انما طالب سهیل اینجا من طلبقی طلبقی طلبق طلب بودن که خبر هست مقصور بر کی گردانیدم بار ده میخوام بیان کنم پس اینجا واجب است که خبر را قبل از سی بیارم بر بله الشاعر شاعرو البحتری بحتری اینجا شاعر خبر هست بحتری مبتدا الخطیبو خبر هست علی مبتدا بله چه چه شایر و ها؟ شاعر چی شاعرو خبر بحتری مبتدا وجوباً مثل موصوف نه همیشه این موصوف قرار بگیره میگه بحتری شاعر است شما بله مال الخطيب مال الخطيب الا علي الخطيب خبر مقدم علي مبتدا مؤخر ما ما النافيه است بعد از بعد از نافیه یم حسره یا بعد از نافیه هم میاد بعد از انما هم برای حسره انما نمیگن که از کلمات حسره ش نشینی دی معنی معنی رو میده بله پس زمان که خبر مقصور بر مبتدا باشد و جيم إذا كان الخبر ظرفاً أو جاراً ومجرورا والمبتدا والمبتدأ نكرتاً خب خوندين أمثلة روح؟ نه خوندين؟ فس بيهاد روح أمثلة سيفو اندي سيارة لدي كتاب للقادم دحشة سيفو من جاي كه خبر بايد قبل از مبتدأ بيايد زمانيست كه خبر ظرف يا جار ومجرور باشد و مبتدأ نكره باشد اندی سیارتون اندی خبر مقدم سیارتون مقطبتداخر ل در یک همچنين همچنین للقاادمی دهشتون همچنین. اما امثله گروه چهارم و چهارمنجایی که واجب از خبر در ابتدا بیاید زمانی است که بر مبتدا ضمیری چسبیده باشد، که به قسمتی از خبر برمیگردد. به قسمتی از برمیگردد؟ خبر اینجا اگر ما بیاییم مبتدار رو اول بیاریم اون موقع مجبور میشیم زمیر به ما بعدش برمی گردد. که این جایز نیست هم لفظن و هم رتبتن زمیر به ما بعدش برمی گردد. پس دقت بفرمایید امثله گروه چهارم را فی الفضیلتی ثوابها اینها به بسوا... فضیله برمیگرده. به چی برمیگرده؟ پس در مبتدا زمیری اومده است که به خبر برمیگرده به چی برمیگرده؟ به قسمتی از خبر للعملی جزا و عملی للعملی جزا و عملی جزا و خ... مبتدای است؟ بله باله, بالعاملی... باله. على الحصاني سرجه همچنین. پس بیاید روی قاعده القاعده جبکی عندي سیاق چطور ظرف باشه اندی ظرفه لا عندي خب عندي ظرفه نه کاری به مضاف بودن نداش مهم که ظرفه ظرف بودن برعربا مهمه هم ظرف لده یه ظرف للقادمی جار و مجروره صحيح. میگه زمانی که خبر ظرف یا جار و مجرور باشه و خبر مبتده نکره باشه متوجه شدی الان؟ بریم جلوتر القاعده یجب تقدیم الخبر علال مبتده فی اربعت مواضع واجب است تقدیم خبر بر مبتدا در چار جا اذاکان خبر مندل اللفاق اللتله صداره زمانی که خبر از اون الفازی باشد که حق صدارات رودار داکان الخبر و مقصوراً ال مبتدا زمانی که خبر مقصور بر مبتدا باشد مسله گروه دوم با انما یا ما با مای که بعدش الله میآید با الله حصرش کرده با الله چکارش کرده، حصر یا با اننماز یا با الله. مقصور یعنی چیز... بر یه چیزی قصرش کردن باله جیم اذا کان الخبر ظرفن او جارن جارن و مجرورن والمبتده و غیر مخصصه زمانی که خبر ظرف یا جارو مجرور باشد و مبتدا نکری باشد که تخصیص نشده باشد دال اذا عاده على بعض المبتدا زمانی که بر بگردد بر قسمتی از خبر زمیری که در مبتدا هست کجا؟ نه نه اون زمیر, زمیر به علی بر کرده اون اونجا زمیر باید بر بگرده خب خب علی و صدیقی کتاب گفته بود به نمون مخبار مقدم میکنیم ظرف زارف بوده؟ جارو مجبور بوده؟ خود و جارو مجبور صدیقی جارو, مجرور جارو مجرور نیست؟ خود صدیقی جارو مجبور نیست. نیست؟ نه نه اون داستانش فاقده کنه این جارو مجبور یا ظرف فقط یا ظرف یا جارو مجبور مضاف مضافال ایله چیزی دیگر است جارو مجرور چیزی دیگه؟ آره اون بحث اون بحث, اون بحث مقدم بودن مبتدا بود مقدم این بحث مقدم بودن چه خبره با هم فرق دارد شیخ من اینجور نظر مید مثلا قرآن داریم ربون الله ربون الله اینی تقیه این درسی که اینجا داریم ربنا خبر مقدمه دلاغ در حسر میدیم مثلا شما گفتی نبی محمد یا محمد و نبی اگر منظور حسر بگیریم خوب نه بحث... ربون الله منظور چیست بحث تقدیم تاخیر مبتدانه بله اگر ما میخوایم که خبر رو محصور بکنیم خوب ربنا الله آه. فقط الله فروردگار ما حس اینجا باید خبر مقدم بیاد مبتدا مؤخر بید. اما اگر حصر نمیخوایم بگیم الله ربونا این دیگه دلالت بر حصر نمیده ولی اگر حصر منظورمون باشه دیگه باید به <تصال> <تصال> <تصال> <تصال> <تصال> <تصال> ما مقدم بیاد دیگه نمیتونیم شما این هر دو حالت رو جایی بله ولی الفاظ حصر بیاید مثلا ما اگر گفتیم ما ربی الا الله اینجا حتما حصر دیگه اینجا دیگه خبر چی شده است؟ بله بله خب اینا رو مرور کنید اینا رو چکار کنید؟ با مرور کردن ملکه ذهن خواهند شد